اوهر عزيزم فاطمة كازمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم فتوري كيف حالك يا فاطمة بخير ماذا فعلتي اليوم يا فاطمتون امرت سيكار کردی انروز درس عربی داشتم بالمرد افعالة کانه و اخواتوها و خواهران، اخواتها، و خواهرانش. برای جلسه پی، چه این جلسه لغت بودیه سه جمله تمرین بکنیم دربارهش. خوب. قبل از هر چی من میخوام زتون تشکر کنم بابت حضورتون در این مصاحبه و برای موافقت شما بخش این مصاحبه داخل سایت و مکالمه عربی. بابي خاطرين شو زمان أذت خيلي خيلي خيلي تشكر ممتنون ما أذت بعض النجوم. أي مكان؟ لندن. آسف. خيلي خيلي سباز جوزان. طب خوار عززم فاطمة جون. شما ما؟ تعال داخل السايت و المكالمة عربي. شنو كاتي مسبتي رود ديدي. فارم. سایتتون سایت دربان جامعه هم حالا میشه ثبت نامی کلاس رو توش انجام داد هم دانلود کتاب ها رو از اونجا میشه انجام داد بعد همین که حالا در واقع تجربه کاربرهای قبلی که توی کلاس شرکت کردنم توش میشه اونا رو دید نظراتشون رو واقعی هستش تقریبا هر اطلاعاتی که بخواد آدم برای شرکت توی کلاس میتونه از توی سایتش و رو دریافت بکنه خب چی مزایای های مزایای نظیری داخل سایت مکان عربی رو دیدی؟ ام... سایتش؟ سایتش مثل بقیه سایت هاست ولی ام... از لحظه رو از لحظه چیزهای دیگه چی چیزای رو دیدی؟ من خیلی عقلت شما با سایت شما کار نکردم اوکی. در حد که همین ثبت نام و انجام بدم و کتاب رو را از توش کنم اوکی. یه سری حالا یه حوضیحات در مورد خودش شما هست و حالا در اون لحجه و کتاب و اینا که توی کلاس میشه بهش دست پیدا کنه آدم اونا رو تقریبا توضیحات جامعه چیزی نیستش دادم مثل سؤال بخواد داشته باشه بخواد تو شرکت بکنه حالا جدا از اون میگم توضیحات کامل اینه مثل تخفیف ها که میدونم همه مدل اطلاعاتی که آدم احتیاج داشته باشه توی ات... چیز که چیز هست بعد این همه مدل در واقع تدریسی هم که آدم احتیاج داشته باشه چه حالا لحجه های مختلف چه کتاب های مختلف رو همه چی توی سایت اومده و آدم میتونه اونا رو انتخاب بکنه درسته درسته خب بابت تخفیفات چیه؟ اموالا کبانو تخفیفم گرفتی درسته؟ تو کرد من فکر میکنم یه دونو برداشتم خب خدا عراق شد <تص> <تص> من در خیلیتونه هستم خب تا الان از بنده از خودم از رفع ادم هاشمی از لحظ فرهنگ چی یاد گرفت حقیقت رو بخوام بگم شما یه ذره آدم خاصی هستین و حالا احتمالا یعنی به طبع تجربه زندگی توی کشورها و فرهنگهای مختلف روش رفتاری و مثلا تدریس شما با بقیه متفاوته علاوه بر این که حالا آدم یعنی سعی میکنی که درسی که دارین میدین و یاد بدین به اون دانشجو در مورد چیزای روزمره زندگی هم سعی میکنید در جایی که اون طرف فهمش رو داشته باشه و دخواد بهش اطلاعات بدین یعنی اینطوری نیستش که صرفا یه سری کلاس فقط در حد جملات عربی و دستور و قوائد و اینا باشه تا جایی که اون طرف در واقع علاقش باشه حالا ممکنه یکی نخواد ولی اگه کسی بخواد شما در جمعه همه جنبه های زندگی هم باشون دانشتون رو شیرو میکنین. درسته. چون زبان عربی هر زبانی نیستش که زبان عربی فرهنگ وجود اینگه وجود. Okay. فرهنگ وجود زبان عربی. خب عالیه. باطن جان. اوهرا عزیزم. شما بی دیگران بی بینندگان عزیزمون بهشون چی توصیه میکنین؟ چی بابت یادگیری زبان عربی چی بابت زندگیشون چی بابت هر چی دیگه؟ چی چیتو میکن بابت زندگی که من در جایگاهی نمی بینم، خب توصیه ای به کسی ولی در مورد حالا زبان عربی تجربه ای که من حداقل تا این مدت داشتم، بلی. خیلی زمان زیادی رو نگذروندم هنوز ولی خب میخوام که ادامه بدم، من که از ها راضی بودم فکر کنم هر شیوه‌ای رو آلاب چه هر لهجه مختلفی رو چه فصیح و اگر آه. کسی بخواد یاد بگیره فکر کنم این کلاس جوابگوشه و شما استاد توامندی هستید به اینکه اون رو به خواستش برسونی بسیار علی بسیار خب میخوای چیزی بهشون چیزی دیگه بهشون توصیه میکنی یا نه؟ نه همین کافیه. مم. نه توصیه‌ای خاصی ندارم ولی اگه کسی دوست داره زبان عربی یاد بگیره به نظرم که زودتر شروع کنه. مستف. خب خيلي ممنون من خيلي ممنون امزاد و دوباره امزاد خيلي تشكل مكنن بابت تشريفتون دارين صاحبه و بابت موافقت شما براي الضبطين و صاحبه و بخشش داغلا المكالم عربي خيلي ممنون امزاد براي الزم فاطنة جون فاطنة كاظمي ممنون امزاد خيلي سبازة خيلي سبازة مدى انت واشد شكرا ان شكرا شاء انشاء الله تجلسة بعدي ومس لها مشه خوش حال ترباش روز خوبی داشته باشید. یا علی. خدا نگه.